دامن کشان همی شد در شرب زر کشیده صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده از تاب آتش می بر گرد آرزش خی چون قطره های شبنم بر برگ گل چکیده لفظی فسیح شیرین قدی بلند چابک روی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده یاغوت جان فضایش از آب لطف زاده شمشاد خوش در ناز پروریده آن لعل دلکشش بین وان خنده دلاشو وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده آن آهوی سیه از دام ما برون شد یاران چه چار سازم با این دل رمیده زنهار تا توانی اهل نظر میازاد دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده تا کل کشم عتیبت از چشم دل فری روزی کرشمی کن ای یار برگزیده گر خاطر شریفت رنجیده شد حافظ بازا که توبه کردیم از گفته و شنیده بس شکر باز گویم در بندگی خواجه گر افتد به دستم ان میوه رسیده